وی مانویه، مولوی برنامه 1 این برنامه با صدای غلام حیدر یگانه ثبت و تهیه شده است که شاعر و پژوهشگر افغان مقیم بریتانیا و از مسنوی خانان و دوستداران مولانا معنی این بیت گر راه روی راه برد بگشایند ور نیست شوی به هستیت بگرایند گرزولیخا بست درها هر طرف یافت یوسف همز جنبش منصرف باز شد قفل و درو شد ره پدید چون توکل کرد یوسف برجهید گرچه رخنه نیست عالم را پدید خیره یوسف وار میباید دوید تا گشاید قفل و در پیدا شود سوی بیجایی شما را جا شود آمدی اندر جهان نیم هیچ می طریقی آمدن آمدن توز جای آمدی وز موتنی آمدن را راه دانی هیچ نی، گر ندانی تا نگویی راه نیست، زین بی راه ما را رفته نیست. میروی در خواب شادان چپ و راست، هیچ دانی راهی آن میدان کجاست. تو ببندون چشم خود تسلیم کن، خیش را بینی در آن شهری که هند. چشم چون بندی کی چشمی چشم خمار بندی چشمی توست این سو از غرار چار چشم توز عشقی مشتری بر امیدی مهتری و سروری ور بخوسبی مشتری بینی بخواب چقدی بد کی خواب بیند جز خراب مشتری خواهی به هر هردم پیچ پیچ تو چی داری کی فروشی هیچ هیچ گردلت را نان بودی یا چاشتی، از خریداران فراغت داشتی، کسی اون شخص که دعوی پیغمبری میکرد کرد، گفتند داشت چی خورده ای که گیج شده ای و یاوه میگویی گفت اگر چیزی یافتمی که خوردمی، نه گیج شدمی و نه یاوه گفتمی که هر سخن نیک که با غیر اهلش گویند یاوه گفته باشند، اگر چی در آن یاوه گفتند، ما امورند. اون یکی می گفت من پیغمبرم از همه پیغمبران فاضلترم. گردنش بستند و بردندش به شاکین همی گوید رسولم از اله خلق بر وی جمع چون مور و ملخ کی چی مکر است و چی دام است و چی فخ گر رسولان است که از ادم، ما همه پیغمبریم و محتشم، ما از آنجا آمدیم اینجا غریب، تو چرا مخصوص باشی ای ادیب نه شما چون طفل خفته آمدید، بی خبر از راه و از منزل بودید، از منازل خفته بگذشتید و مست، بی خبر از راه و از بالا و پست، ما به بیداری روان گشتیم و خوش. از ورای پنج و شش تا پنج و شش، دید منزلها ز اصل و از اساس، چون قلاوزان خبیر و رهشناس شاه را گفتند اشکنجش بکن تا نگوید جنسی او هیچین جنس سخن، شاه دیدش بس نظار و بس زعیف کی به یک سیلی بمیرد آن نحیف، کی توان او را فشردن یا زدن کی تو شیشه گشته از را بدن لیک با او گویم از راهی خوشی کی چرا داری تو لافی سرکشی کی درشتی ناید اینجا هیچ کار هم به نرمی سر کند از غار مار مردمان را دور کرد از گردی وی شهل تیفی بود و نرمی وردی وی پس نشاندش باز پرسیدش سجا که کویا داری معاش و ملتجا گفت ای شه هستم از دار السلام. آمده از ره درین دار و ملام نیمرا خانستونه یک هم نشین خانه کی کرده است ماهی در زمین باز شه از روی لاغش گفت باز که چی خوردی و چی داری چاشت ساز اشتها داری چه خوردی بام داد که چون این سرمستی و پرلاف و باد، گفت اگر نانم بودی خشک و تری، کی کنیمی دعوی پیغمبری؟ دعوی پیغمبری با این گروه همچنان باشد که دل جستن زکو، کس کوه و سنگ، اقل و دل نجست، فهم و زبطی نکتهی مشکل نجست. هرچی گوی باز گوید کوه همان میکند افسوس چون مستهزیان از کجا این قوم و پیغام از کجا؟ از جمادی جان کرا باشد رجا گر تو پیغامی زنی آری و زر پیشی تو بنهند جمله سیم و سر کی فلانجا شاهدی میخاندد آشق آمد بر تو اومی داندد بر تو پیغامی خدا آری چشد کی بیا سوی خدا ای نیک اهد از جهانی مرگ سوی برگ رو چون بقا ممکن بود فانی مشو قصد خونی تو کنند و قصد سر نز برای همیتی دین و هنر و به اداوت به بیگان زیستن ایشان به اولیای خدا که به حقشان میخوانند با آبی حیاتی ابدی بلکی از چفسیدگی بر خانمان تلخشان آیت شنیدن این بیان خرقی بر ریش خرچفسید سخت چون که خواهی بر کنیز و لخت لخت جفته اندازد یقین اون خرزه درد، هب بزا اون کس کزو پرهیز کرد، خاص پنجه ریش و هر جا خرقه ای بر سرش چفسیده در نم ای، خانمان چون خرقه و این هرس ریش، هرسی هر که بیش باشد ریش بیش. خانمان جغت و ایران است و بس، نشنود اوصاف بغداد و تبس، گر بیاید بازی سلطانی زراه صد خبر آرد بدین جغدان زشا شرحی دار الملک و باغستان و جو پس برو افسوس دارد صد ادو چی باز آورد افسانه کهن که از گذاف و لاف می بافد کهنه ایشانند و پوسیده ابد ورنه آن دم کهنه را نو می کند مردگانی کهنه را جان می دهد، تاجی اقل و نوری ایمان می دهد. دل مدوزد ده دل رو روح بخش، که سوارت می کند بر پشتی رخش، سر مدوزد سرفرازی تاجده، کوز پایی دل گشاید صد گره. با کی گویم در همه ده زنده کو، سوی آبی زندگی پوینده کو، تو به یک خاری گریزانی زه اشق، تو به جز نامی چه میدانی زه اشق. عشق را صد ناز و استکبار هست، اشق با ست ناز می آید به دست. اشق چون وافیست وافی می خرد. در حریفی بی وفا می ننگرد. چون درخت است آدمی و بیخ عد، بیخ را تیمار می به جد اهدی فاسد بیخی پوسیده بود و سمار و لطف ببریده بود شاخ و برگی نخل گرچی سبز بود با فسادی بیخ سبزی نیست سود ور بر ندارد برگی سبز و بیخ هست آقابت بیرون کند سد برگ دست تو مشو غره به علمش اهد جو علم چون قشر است تو عدش مغزی او در بیان آن که مردی بدکار چون متمکن شود در بدکاری و اثر دولت نیکوکاران بیند، شیطان شود در مانع خیر گردد، از حسد همچون شیطان که سوخته همه را سوخته خواهد، ار ایتال لذی ینها عبدن ایدا سللا. وافیان را چون ببینی کرده سود، تو چو شیطانی شوی اونجا حسود هر کرا باشد مزاج و تبعی سست او نخواهد هیچ کس را تندرست. گر نخواهی رشکی ابلیسی بیا، از دری دوا به درگاه وفا، چون وفاید نیست باری دم مزن، کی سخن دویست اغلب ما و من، این سخن در سینه دخلی مغز هاست در خموشی مغزی جان را ست نماست چون بیامد در زبان شد خرج مغز خرج کم کن تا بماند مغز نغز مردی کم گوینده را فکر است زفت قشتی گفتن چون فزون شد مغز رفت پوست افزون بود لاغر بود مغز پوست لاغر شد چو کامل گشت نخص بنگرین هر سز خامی رسته را جوز را و لوز را و پسته را هر که او اسیان کند شیطان شود کی حسودی دولتی نیکان شود چون که در اهد خدا کردی وفا از کرم اهدت نگه دارد خدا از وفای حق تو بسته دیدهی اسکرو اسکرکم و نشنیدهی گوش نه اوفو بی اهدی گوش دار تا که اوفی اهد و کم آید زیار اهد و قرضی ما چی باشد ای هزین همچه دانه خوش کشتن در زمین نه زمین را رازان فروغ و لمتوری نه خداوندی زمین را توانگری جز اشارت کی از این می بایدم کی تو دادی اصلی این را از ادم خوردم و دانه بیاوردم نشان که از این نعمت به سوی ما کشان پس دعای خوش هل عینیک بخت کی فشاند دانه میخواهد درخت گر نداری دانه ایزد زان دعا بخشدد نقلی که نعم ما سعا همچن مریم درد بودش داننی سبز کرد و نقل را صاحب فنی زان کی وافی بود اون خاتونی راد بیمرادش مرادش داد یزدان صد مراد آن جماعات را که وافی بوده اند بر همه اسنافشان افزوده اند گشت دریاها مسخرشان و کو چهار عنصر نیز بنده ای آن گروه این خود کرامی است از بحر تا ببینند اهل انکار آن ایان آن کرامتای پنهانشان که آن در نیایت در حواس و در بیان کار آن دارد خودن باشد ابد دایما نه منقطه نی مستره ای دهنده قوت و تمکین و ثبات خلق رازین بی ثباتی ده نجات اندارون کاری که ثابت بوده نیست قایمی ده نفس را که منسنیست صبرشان بخش و کفی میزان گران وارهانشان از فنی صورت گران و سوسودی بازشان خر ای کریم تا نباشند از حسد دیوی رجیم در نعیمی فانی مال و جسد چون همی سوزند آمه از حسد پادشاهان بین کلشگر میکشند کشند از حسد خیشان خود را میکشند. کشند آشقانی پر پرقذر کرده قصد خون و جان همدگر وی سرامین رامین خسرو و شیرین بخان کیچی کردند از حسد اون ابلهان فنا شد آشق و معشوق نیست همنه چیزند و هواشان همنه چیز پاک الهی کی ادم بر هم زند مر ادم را بر ادم آشق کند در دلی نه دل حسد ها سر کند نیست را هستین چونین مستر کند این زنانی که از همه مشفق ترند، از حسد دو ذره خود را می خورند تا که مردان که خود سنگین دلند از حسد تا در کدامین منزلند گر نکردی شعر افزونی لطیف بردریدی هر کسی جسمی حریف شر و بهری دفع شر رای زند دیو را در شیشهی حجت کند از گواه و از یمین و از نکول تا به شیشه در رود دیوی فزول، مثل میزانی که خشنودی دوزد جمع می آید یقین در حضل و جد شر و چون کیل ترازو دان یقیم کی بدو خسمان رهند از جنگ و کین گر ترازو نود اون خسم از جدال کی رهد از وهم حیف و احتیال پس در این مردار زشتی بی وفا این همه رشک است و خسم است و جفا پس در اقبال و دولت چون بود چون شود جنی و انسی در حسد، اون شیاطین خود حسودی کهنه اند یک زمان از رهزنی خالی نیند آن بنی آدم که اسیان کشتهاند از حسودی نیز شیطان گشتند از نوبی برخان که شیطانان انس گشتند از مسقحق حق با دیو جنس دیو چون عجز شود در افتتان استعانت جویدوزین انسیان که شما یارید با ما یاری جانبی ماید جانبداری گر کسی را ره زنند در جهان هر دوگون شیطان برایت شادمان بر کسی جان برد شد در دین بلند نوه می دارند آن ره هر دو میخوایند دندان حسد بر کسی کی داده دی بورا خرد پرسیدنی آن پادشاه از آن مدعی نبود که آن کی رسولی راستین باشد و ثابت شود با او چی باشد که کسی را بخشد یا به صحبت و خدمتی او چی بخشش یابند غیر نصیحتی به زبان که میگوید. شاه پرسیدش که باری وحی چیست یا چی حاصل دارد آن کس کو نبیست گفت خود آن چیست که حاصل نشد یا چی دولت ماند کو واصل نشد گیرم این وحی نبی گنجور نیست همکم از وحی دلی زنبور نیست چون که او هر رب ایلن نهل آمد است خانه وحیش پر از حلباش شده است او به نور وحی حق از وجل کرد عالم را پر از شم و اصل این که کرم ناست تو بالا می رود وحیش از زنبور کی کمتر بود نی تو ات که کوسر خانده ای؟ پس چرا خشکی و تشنه مانده ای یا مگر فرعونی و کوسر چونیل بر تو خون گشت است نا ناخوش ای علیل تو بکن بیزار شو از هر ادو کو ندارد آب کوسر در کدو هر که دیدی دیدیز کوسر سرخ رو او محمد خوست با او گیر خو تا احب آیی در حساب که از درختی احمدی با او سیب هر که را دیدیز کوثر خوش لب دشمنش میدار همچون مرگ و تب گرچه بابای تو است و ما می تو که حقیقت هست خون می تو از خلیلی حق بیا موزین سیر کی شدو بیزار اول از پدر تا که ابغز لله آیی پیش حق تا نگیرد بر تو رشکی اشق دق تا نخانی لا و الا الله را در نیابی منحج این راه را داستان آن عاشق که با معشوق خود برمی خدمتها و وفاهای خود را و شبهای دراز تتجافی جنوب هم المزاج را و بینوایی و جگرتشنگی روزهای دراز را و می گفت که من جز این خدمت نمی دانم. اگر خدمت دیگر هست مرا ارشاد کن که هرچی فرمایی منقادم اگر در آتش رفتن است چون خلیل علیه السلام و اگر در دهان نهنگ دریا فتادن است چون یونس علیه السلام و اگر هفتاد بار کشته شدن است چون جرجیس علیه السلام و اگر از گریه نابینا شدن است چون شعیب علیه السلام و وفا و جانبازی انبیا را علیهم السلام شمار نیست و جواب گفتن معشوق او را آن یکی عاشق به پیشی یار خود می شمرد از خدمت و از کار خود که از برای تو چنین کردم چنان تیرها خوردم در این رزم و سنان مال رفت و زور رفت و نام رفت بر من از عشقت بسی ناکام رفت هیچ صبحم خفته یا خندان نیافت هیچ شامم با سر و سامان نیافت آنچی او نوشیده بود از تلخ و درد او به تفصیلش یک آ یک می شمرد. برای منتی، بل می نمود بر درستی محبت ست شهود. آقلان را یک اشارت بس بود، آشغان را تشنگی زن کی رود. میکند تکرار گفتن بی ملال، کیز اشارت بس کند حوت از زلال. سد سخن می گفت زندردی کهان در شکایت کی نگفتم یک سخن آتشی بودش نمیدانست چیست لیک چون شم از طفیان آن میگریست. گفت مشوق این همه کردی ولی گوش بکشا پهن و اندر یاب نیک آن چی اصلی، اصلی عشق است و ولاست، آن نکردی، این چی کردی، فرعه هاست. گفتشان آشق بگو کن اصل چیست، گفت اصلش مردن است و است تو همه کردی، نمردی زندهی، هین بمیرر یاری جان با زنده ای؟ هم دراندم شد دراز جان بداد داد همچ گل در باخت سر خندان و شاد ماندان خنده بر وقفی ابد همچ جان و عقل عارف بی کبد. نوری ماه آلود کی گردد ابد گر زندان نور بر هر نیک و بد. او جمله پاک و با گردد به ما همچو نوری عقل و جان سوی علاه وصفی پاکی وقف بر نوری مه است تابششگر بر نجاساتی ره است زان نجاساتی ره و آلودگی نور را حاصل نگردد بدرگی هر بشنود نوری آ سوی اصل خیش باز آمد چتا نیز گلخنها بر او ننگی بماند نیز گلشنها بر او رنگی بماند نوری دیده و نور دیده باز گشت مان در سودای او صحرا و دشت